روزه برایچه سنه های واجب است. روزه مانند مانند نماز باید از هفت سالگی بچه ها برای روزه تشویق میکنی. نماز برای بچه از هفت سال و با تشویق باشن تا ده سال بعد از ده سال اگر نمازونه خو نههار بزنین.مروع هم به سالات و هم ابنا و سب نین. هم و هم ابنا اشر اش هفت سال بوده امر به نماز بکنین حدیث هست. 10 سال اگر نماز نخون اون رو بزن تا 15 ساله حالا 7 سال بچه ها رو تشویق تا 10 سال روزه بگی تشویق تشویق اگر خانواده فضاش روزه باشه و تشویق با خود به تشویق میشن جاهای فضا روزنی تشویق نمیشن فضا رو ایجاد کنید و اون ها رو تشویق کنید تا 10 سال 10 سال دیگه نگو بخور حالا خیلی میاد بخور تو بچه نوالغی نگو بخور ای خودش نتونست بگیره از یشو حالا دیگه شما ازیتش نکنید اما سعی کنید گناه رو به روزی عمر کنید اگر برایش خطر داشت وادار نکود تمیدش از بیفته. اما تشویر باشد